تن درست باشید مرزا جان. درود به همه دوستان. جناب آی اطای گرامی و سفاس از اینکه که در فیرما قرار دادید و دوستانی که حضور دارن. خب دوستان امروز در پیشگاه جناب امید اطای فرد هستیم. جناب آقای امید اسایفرد زاده 2524 شاهنشاهی ایشون پژوهشگر تاریخ اسطوره و فرهنگ ایرانشهری هستند و ارائهگر فلسفه سیاسی میهن سالاری کیانی سی سال کوشش برای ایرانشناسی و برگزاری نشستهای بونابون و سخنزانی داشتند و نویسنده 20 کتاب که برخی هنوز منتشر نشده و بیش از 200 مقاله ایشون در زمینه برنامه نویسی برای دانشگاه ایران و پنج دانشکده با بیش از ست شاخه و زیرشاخه شاخه بودن. امروز از سخنان ایشون بهره میبریم. پیش از اون دوستان یک مرام نامه ای رو ما داریم در نشستهای ماهانه دانشگاه سپنتا که پیش از اینکه که آیه اطای سخنشون رو آغاز بکنن پروانه میخوام که من این رو در پیشگاه دوستان بخونم و بر همین مبنا ما به امید خدا جلو بریم نخست اینکه باشندگی به هنگام شما در نشست ها شوند بهره‌گیری بیشتر از آموزه‌ها خواهد شد دو بنص برای آغاز سخن و پرسش کردن شماره یک را در بخش پیام روان کنید و چشم به راه پروانه گرداننده نشست نمانید سه پرسیدن هر پرسش نباید بیش از دو دقیقه زمان ببرد. چهار، برای سامان بخشیدن به پرسشتان و هر هرچی بیشتر از زمان پرسش، آن را پیش از پیش آماده کنید و بدانید چه می‌خواهید بپرسید. پنج، به مهر پرسش خود را روشن بپرسید. یک جمله گویا و در مورد پرسش خود توضیح ندهید. شش، به مهر تنها پرسش کنید. و پژوهش و مطالعات خود را در نشست بیان نکنید هفت به مهر پرسش باشندگان دیگر را پاسخ نگوید. هشت به هیچ روی از استادان آگاهی فردی مانند کشور شهر اینکه کجا زندگی میکنند و یا شماره تلفن نخواهید چنانچه آگاهی بیشتری خواستید از گرداننده و یا میزبان خواهان باشید نو اگر پرسه شیطان به شوند پایان نشست پاسخمان دانشگاه سپنتا زمینین را برای پاسخ و استاد به پرسه شیطان پس از نشست فراهم خواهد کرد. از به کار بردن هر گونه واجه ناپسند، ناسزاگویی به دیگران و اندیشه و آینها خودداری بفرمایید. فرمایید. 11. سخنان هر یک از سخنرانان و باشندگان در نشستا از سوی خود آنان است و پاسخگویی یا مسئولیت آن هم با خود آنان میباشد. و آنها از سوی دانشگاه سفنتا برای آشنایی همیهنان با اندیشه ها و پجوهش های استادان گوناگون پس از این مورد من خواهشم از دوستان اینه که زمانی که آیه دکتر اطای فر زحمت میکشن گفته بو میکنن بلنگوها رو خاموش بفرمایید ها رو و گوش فرامیدیم به سخن آیه امید اطای فرد آیه اطای فر در پیشگاه شما خواهیم بود بسیار سپاس نخواستیم که بفرمایید کل زمان ما چقدر هستش <تصفیح> من بگمانم مزا جان ما زمانمون رو شما زحمت زمانبندیش رو کشیدید بفرمایید میتونیم تا یک ساعت و نیم پیش بله بسیار خوب. در خدمتون هستم نخواست که درباره مبدع ملی یه توضیحی بدم و این تاریخ شاهنشاهی که در واقع تاریخ شاهنشاهی در نهایت سرآغاز تاریخ ما نیست یعنی تشگذاری شاهنشاه گوش بزرگ در واقع نقطه اوج تاریخ ما هستش و این تاریخ، میتونه به عنوان یک تاریخ جهانی، تقویم جهانی بکار بره. همونطور که شما میدونید امروز تقویم بین المللی زایش عیسی مسیح هستش و حتی سال زایش عیسی مسیح هم نامعلوم و ناشکاره. اصلا دقت و تیزبینی در این تقویم بکار نرفته. خیلی خیلی مبهمه. تا 200 سال حتی 300 سال این تاریخ این تقویم میتونه تونه بشه. برای همین یکی از پیگیری ها و پیشنهاداتی که من داشتم این بود که تاریخ شاهنشاهی تبدیل بشه به تاریخ جهانی یعنی ما کوشش کنیم و اینو پیش ببریم همونطور که نوروز رو کم کم داریم به عنوان یک جشن جهانی جا میندازیم این تاریخ رو تاریخ شاهنشاهی رو به عنوان یک تقویم ملل متحد به کار ببریم چون برای نخستین بار و شاید واپسین بار در زمان حقاملشان یک دولت اهورایی جهانی پرید اومد که برای کل گیتی، آرامش، سول، سازندگی، آبادانی رو و دادگری و ادالت رو به دنبال داشت و اما بریم سراغ بحث اصلی خودمون، گفتار اصلی خودمون و اون زمان زردوشته زمان زر چرا اهمیت داره و چرا ما داریم به این گفتار بهش میپردازیم به این دلیل که در نهایت تاریخ ایران با این پیامبر بزرگ بیره خورده و بسیار مهمه گاه شمار زمان زرش رو ما به درستی تعیین کنیم چون بر پایه اوستا گات‌ها و دیگر متها که داریم اگر زمان زرفش به درستی تعیین و تبیین نشه تاریخ ایران دچار گستستگی ها، شکاف ها و ناب خواهد شد همانطور که شما میدونید برای مدتهای زیادی تاریخ زایش و زرفش رو حدود 600 قبل از ميلاد میدونستم من این زمان ها رو سر و سر میدم و خیلی وارد جزئیات نمیشم این تاریخات تقریبی است یعنی گاهی بعضی اون میگم 500 خوره قبل از میلاد یا 600 خورهی من ورود میاندین نشون تا این که در این تاریخ و در این تقویم شکهایی به جا رخ میده و توجه به این مسئله جلب میشه که برای نمونه زبان گات‌ها یا جامعه‌ای که زرتشت در اون زندگی میکرد نمیتونسته اینقدر نزدیک باشه و سپس تقویم دیگری پیگیری میشه و امروز رواج پیدا کرده که حدود 1700 قبل از میلاد رو تعیین کرده برای زمان زرتشت و سال 1395 اجری شمسی برابر شده به 3754 زرتشتی اما ما میخواهیم در این برنامه به این تاریخ هم شک کنیم و بررسی کنیم و بگوییم که با نگرش و اسناد بسیار و این تاریخ نادرست است و میبایست جامعه زرتشتی و دیگر دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران بر دامنه پژوهشها بیفزایند و تاریخی درست‌تر و دقیقتر رو نشون بدن. ببینیم که چرا باید به این تاریخ شک کرد این اینکه در هولوهوش هزار قبل از میلاد زمانی که ما به تاریخ و باستانشناسی نگاه میکنیم نشانه هایی از ارتش نمی بینیم. یعنی چیزی رو نمی بینیم که نشانگر این باشه که زرتاش در این دوره ظهور کرده باشه و من خواهم گفت که چرا چنین اشتباهی رخ داده چه چیزی باعث شد که به ویژه استاد زبیه بهروز چنین تقویمی رو چنین گاشماری رو پی بگیره یکی از دلایلش اینه که استاد بهروز بهش توجه نکرد با اینکه خودشون در کتابهاشون به قدمت تمدن ایران هم اشاره داشتن که به ده تا دوازه هزار سال پیش می رسیده. روز استورایی ششام فروردین هست و بر برپایه این روز استورایی استاد زبیه بهروز محاسبات خودشون رو انجام دادن در حالی که ما می دونیم ششام فروردین روز و اگر به کتاب گذیده های زاسته پرنگاه کنیم متوجه میشیم که زاد روز زرتاش بدوده 29 اسفن بوده و اما دلایل دیگری که ارائه خواهیم داد ما برای بررسی این تاریخ میبایست به چندین زمینه توجه داشته باشیم یکی خود اسناد تاریخی هستش دیگر باستان شناسی هست دیگر جامعه شناسی هست دیگر خود جغرافیا هست جغرافی های تاریخی و بررسیهای های اقلیمی و دیگر زبان شناسی و دیگر اختر شناسی وقتی که همه اینها رو کنار هم جمع بکنیم همونطور که پروفسور کترک در کتاب زمان نشان داده در میابیم که زمان زرتوش بسیار بسیار کوهن بوده و دستی کم هشت هزار و سال پیش زرتوش سپیتمان ظهور کرده است. محققان با توجه به اشاراتی که در وداهای های به برخی گیاهان و فراورده های کشاوازی که در هند موجود نبوده اینها رو وقتی بررسی کردن به این نتیجه رسیدند که خواستگاه سروده های بنیادین ودایی در فلات ایران بوده است. دلیل اینکه من به وداها اشاره میکنم اینه که وداها رو با گاتها سنجیدند و زبانشناسان ثابت کردند که لغتهای گاتها قدیمی تر از وداها است. یعنی ثابت شده که گات ها گات های از بده ها کوهند تره. خب. خب میان می, آیم می بینیم، ببینیم بده ها نخستین سرده های بده ها از اون آغاز به چند سال پیش بر میگرده. مارتین هاوت 2400 قبل از میلاد رو به دست داده. پش دیگری به نام یعقوبی هنج هزار سال قبل از میلاد برخی از سروده‌ها رو اینا بررسی کردن این تاریخ ها بر مبنای کل ها نیست بر مبنای قدیمی ترین و نخستین سرودهای بدایی هستش پژوهشگر دیگری به نام تیلاک هزار سال قبل از میلاد رو ارائه داده که مورد پذیرش مارتین بولر نیز قرار گرفته و یک نکته من اینجا اشاره کنم که به نادرست زرتشت رو رویاروی مهفرسی دونستن این یکی از خطاهای بزرگی که در شناسی و شناسی راه یافته آن فرقه، آن کشی که زرتوش رویارویش بود میتفراییست مهفرسی نبود بلکه آهین برحمن بود آهین بر برمبنای دیمفرسی بود و آین زرتوش بر مبنای احورا پرستی. ما هی میگیریم به صورت کلی و ببینیم که این تاریخ گذاری رو که بهش اشاره کردیم چه چیزهایی میتونه تایید بکنه روایات مورخان یونانی و رومی درباره زمان سپیتبان زرتوش بسیار بسیار اهمیت داره او را رو طبق روایات مختلف 6 هزار سال پیش از افلاتون از سرخامانشی یا 5 سال قبل از نورد ترویا میگونستن نبرد ترویا هزار سال پیش از سرخامانشیان بوده یعنی تاریخ های گوناگونی که مورخان گوناگون و مختلف در زمانها و دوران جدا از هم ارائه دادن همه به یک چیز برمیگرده و آن این که زمان اشازرتوش دستکم 6 هزاره پیش از حقامنشیان بوده ما سرنخهای دیگری هم داریم می میگفت که مقان بسیار قدیمیتر از مصریان هستند. خب تمدون مصر دستکم 5 هزار سال فدمت داره سرآغازش دستکم 5 هزار ساله پیش میرسه و نویسنده دیگری به نام اربلو اشاره کرده که ایرانیان قدیم زرتوش را چند هزاره پیش از موسا می دانستند. ما می بینیم که در گاتا زرتوش فقط از جمشید نام برده و سلسله شاهانه دیگر در گاتا یاد نشده. در کتاب دین دینکر از شکسته شدن بوتهای زحاک به دست زرتوش، و نیز پناهندگی دو تن به فرششتر، پدر همسر زرتوش در زمان فریدون یاد شده شما دقت کنید به این تاریخ ها اینا سرنخ های بسیار بسیار مهمی است و به این ترتیب ما متوجه میشیم که باید شک بسیار بسیار زیادی در این تقویم نارساب و نادرست کنونی بکنی زمان زرتوش 1700 قبل از میلاد نمیتونه باشه نکته دیگری که میتونه به یاری ما بیاد جامعه شناسی است در فروردینیش ما میبینیم که زرتوش نخستین آتوربان نخستین ارتشتار نخستین بردگر دامپرور نخستین کسی که از دیپرستی روی گردانید نخستین آموزگار یاد شده اینجا یک چیزی اضافه کنم شوربختانه لقب معلم اول رو به ارستو دادن این واقعا ستم در باره زرتوش هستش معلم اول نخستین آموزگار رو باید زرتوش دونست نه ارستو و زمانی که ما نگاه میکنیم به اوستا در می‌یابیم که در بنیادی ترین اوستایی های مانند همین فروردینگشت تنها به سه طبقه اجتماعی اشاره شده یعنی طبقه آتوربانان، ارتشتاران و کشاورزان و طبقه چهارمی هنوز درکار نیست این نشون که زمان سپیت منذرتوش پیش از پیدایش طبقه چهار روم طبقه پیش بوده و با توجه به کابوش ها و بررسی هایی که هست پیدایش و طبقه چهار روم هفت هزار سال پیش بوده دستیکم و اینها هم سرنخ ها و نکاتیه که میتونه قدمت زمان زرخش رو به ما نشون بده و اهمیتی که این زمان داره اینه که هرده از یک دروغ و جعل دیگری در تاریخ ایران بر میداره و اون مهاجرت و کوش خیالی آریا ها به ایرانه طبق اوستا ایران زمین از آغاز سرزمین و خواستگاه نژاد آریایی بود و ایرانیان آریا ها از ایران به دیگر سرزمین ها کوش کردند نه اینکه از جای دیگری به ایران آمده باشند و باز ما میبینیم که در کتاب هفتم دینکرد اشاره شده زرتشت دز سال هزاهفاد از آفرینش ز دوران دوازده هزار ساله زاده شده اینو ما داریم این تاریخو بر پایه یک سند معنوی از چین برپایه یک سند مانوی از چین اشاره شده که مانی در سال 11.527 تاریخ جهانی به دنیا آمده زمانی که این تاریخ ها رو کنار هم میگذاریم در میابیم که زرتوش 5.857 سال پیش از مانی می‌زیسته و از اونجا که تاریخ تولد مانی 216 میلادی بوده زمان زرتوش حدوداً به 6090 سال قبل از میلاد میرسه یعنی شما وقتی روایت دین رو با این سند منوی کنار هم بذارید زمان زرتوش به حدود 6090 از 6100 سال قبل از میلاد خواهد رسید خب اینها سرنهایی بس کلی و فشارده بود که تا اینجا ما ارائه دادیم و اما نشانه بسیار مهم دیگر این است دوستان گرامی برای بررسی تاریخ زرتوش تاریخ اوستا تاریخ کیش ها که مقام داشتند به این نشته بسیار مهم باید دقت کنیم ما نه یک زرتوش بلکه چند زرتوش داشتیم یعنی کسانی ظهور کردند با لقب زرتوش ما میدانیم که نام پیانور بزرگ سپیتمان بوده و زرتشت یک لقب هستش یک ویژه نامه و به کسانی گفته میشد که به اشراق میرسیدن به روشن شدگی زرتشت یعنی فروغ زرین ستاره زرین و این ترجمه که داروی شطور زده ترجمه درست نیست نادرسته. به جز این زرتشت سپیتمان، زرتشت بزرگ زارتشت های دیگری در تاریخ ظهور میکنند و پجمشگرانی مانند آب پوش و مری گاز اینها نیز بر این باورن که باید به دنبال جایایش هم زرتشت بود. و به این ترتیب در میابیم که زندگی زرتش ها با یکی درآمیخته و پاره گفتارهایی که به نظر درست نمیاد از آن سپیتمان باشه ممکنه از زرتش های دیگری باشه ما حتی میدانیم که پیشوای مذک بامدادان زرتش فسایی بود که با گاهی در متون اسلامی عربی از او زرادوشت ثانی یاد کردن زرتوشت دوم. اما ما زرتوشت های بیشتری داشته ایم و برای نمونه میبینیم که در کتاب تب العوام آمده مانویه میگوین زرتوشت در زمان دارا داریوش، ظاهر شد و مجوس یعنی زرتشتیان انکار میکنند خب این روایت نشون میده که زرتشتیان قدیم میدونستن که زرتش هستی یعنی سپیتمان در زمان کهنطری میزیست علت این که شما می بینید یک سری اسناد زمان زرتش رو در, زمان در دوران هخامنشیان نشون میده در اینه که زرتش دیگری در دوره هخامنشی ظهور کرده ولی او سپیتمان نبوده و یا دقیقی توسیش شعری داره که اشاره میکنه به همزمانی زرتوش و اینکه زرتوش استاد دارا یا داروش بوده تا میل کرد موبد از مذهب ها آن زردهش کو بود استاد بیش دارا و به این ترتیب اگر این مدارک رو کنار هم قرار بدیم اینجاست که وارد یک شک بسیار بزرگ تاریخی میشه دوستان گرامی میتونید پرسش هاتون رو به صورت کتبی تایپ کنید بفرستید اگر تا اینجا پرسشی داشتید و من بر اساس پرسش های شما هم این مطالب رو میتونم انشاء رو ببرم و اما ببینیم از زرتوش چگونه یاد شده او را کلدانی پامفیلایی باکتریایی و باختری، بلخی، آشوری، زرتشت و و با لغبهای دیگر و مکانهای دیگر یاد کرده اند. به این ترتیب پژوهشگران بسیار گیج میشن، آشفته میشن از این همه روایت مختلف و بسیاری از آنها در نمیابن که در واقع نباید یک زرتوش بلکه با چند زرتوش رویارو هستند. و باید زندگی اینها رو از هم تفکیش کنند. به قول هنینگ یکی از این پژوهشگران میگه که هر کسی که بیاد دو تا تصویر از ارتاشه که اثر هرسفرد و دیگری اثر نیبیل رو بینگره و درباره آنها بیاندیشه گمان دوشاره سرگیجه میشه چگونه ممکنه دو محقق تراز اول یعنی هرسفرد و نیبیل که منابعشان دقیقا یکی هستش به نتایجی برسن که نقطه مقابله همه زرتوشت هرسفرد یه سیاستمدار مدار پشت پرده و اشرافی تبعیدیه و زرتوشت نیبرک یک انسان مقابل تاریخ و جادوگر بادگسا و اینجا ما باید ببینیم چرا تاریخ کنونی یعنی 1700 قبل از میلاد چرا تاریخ کنونی 1700 میلاد رایج شده؟ همونطور که گفتم یکی از دلایلش محاسبات استاد زبیه بهروز بود. این محاسبات اگر فرض کنیم که نادرست نباشه و به هر حال روی یک سری مسائل شادروان استاد زبی به روز به نتیجه رسیده به هر حال مربوط به سپیتمان زرتوش نمیشه مربوط به زرتوش دیگری میشه که شاید برای شما حیرت آور باشه که این زرتوش در منابع و تاریخ‌های اسلامی کسی نیست مگر ابراهیم ابراهیم شیخ بزرگ یهود، مسیح و اسلام برخی بر این باور هستند که این لقب ابراهیم که زرتاش بوده بهش میگفتن ابراهیم و بعد از اسلام درست شده برای اینکه یک جوری ایرانی ها خودشون رو به هر حال با دینهای به اصطلاح ابراهیمی همگون کنند. اما بر پایی یک سند این دیدگاه نادرسته در یکی از نامه های اسقف شهر سزاریه به نام بازیل که در سال 377 میلادی نگاشته شده اشاره شده که مقان خود را از نسل ابراهیم میدانند البته این مقان مقانه غرب ایران هستن. این اسقف درباره ایرانیان کاپادوکیه نوشته مهاجرینی هستند که در گذشته دور دست از سرزمین بابل به اینجا مهاجرت کردند. رأس و ہوا۔ ویژه خودشون خودشونو دارن و آتش را چون خدا پرستش میکنن، خودشون رو از نسل ابراهیم میدونن و میگویند، زرنواس یا زروان بنیانگذار نژاد آنها بوده است و زمانی که شما میایید تاریخ اسلامی رو دوره اسلامی رو بررسی میکنید متوجه میشید که در این تاریخ اشاره شده ابراهیم در غرب ایران به دنیا اومده حالا منطقه مثل شوش یا اهواز یا بابل یا حدود زاب ما میدونیم که در همون تاریخ ها ابراهیم در زمان نمرود بود. نمرود در متون یونانی و شاید هم رومی به گونه نینوس یاد شده. و اینجا یکی از رازهای بزرگ تاریخ گشوده میشه. که شما میتونید برای آگاهی بیشتر به کتاب من مراجعه کنید به نام پیامبر آریایی در این کتاب من نشون دادم چگونه داستان زرت با هم آمیخته شده از جمله ابراهیم و سپیتمان سوئیداس یونانی در سالهای نزدیک به 970 پس از مسیح میلادی زندگی میکرده کتابی داره که در این کتاب از دو تا زرتاش نام ببینید این یه سنده. این یک مدرکه. سویداس از دو زرتاش نام بوده. یکی دانای پارس و ماد که 5000 هزار سال پیش از جنگ ترویا میزیسته دیگری اخترشناسی بوده در زمان نینوس. یعنی نمرود. یعنی همین ابراهیم. و این شک رو دیگران هم داشتن. مانند اگسی او این شک رو داشته که این زرتوش در رمان گشتاس به ح گشتاس به یا ویشتاس به دیگری است. از یک زرتوش نام برده در جزیره پااکنسوس میزیست. بسیاری از نویسندگان یونانی و رومی از یک زرتوش نام بردن که فرمانروای ماد بود و در جنگ با نینوس شاه بابل کشته شد. به این ترتیب، ما اگر بتونیم مانند قطعات پازل این تکه ها رو جمع آوری کنیم کنار هم بشینیم در میابیم که شوربختانه متاسفانه با افسوس بسیار تاریخ کنونی که رواش پیدا کرده این تاریخ 3700 ساله تاریخ ابراهیمه یکی از واقعا ترخندهای تاریخ خواهد شد یکی از اصف بارترین تصمیماتی بود که جامعه زرتشتی گرفت در واقع برخی از آنها که تاریخ ابراهیم را به جای سپیتمان رو باشدن با این اسناد و مدارکی که من ارائه دادم و بارها این گرامیان رو موبدان رو و دیگر اصابه نظران این که این تاریخ رو تایید کردن و کردن به مناظره فرا خواندم و باز هم فرا می خوانم در یک مناظره بشنین یا تا از چند جلسه و به بحث و گفتگو درباره این اسناد و مدارش بپردازیم. از پرسش هایی که دوستان کردهاند یکی درباره مهاجرات آریهااست که در این باره خب بحث ها بسیار مفصله و شما گرامیان من پیشنهاد می کتاب ایران بزرگ و مرز مزدایی رو، اگر ببینید در این کتاب ها در زمینه مفصلا من توضیح دادم و نشکه بعدی درباره نزدیکی دستور زبان و سبک سروده های و گات ها هستش که به این مسئله پمشنون می نیبرگ در کتاب دین ایران باستان اشاره میکنه که یک قطعه گات ها مانند سروده سی یک, سی یک. سی می تواند به خوبی در ریگ بده جای گیرد. و بلومفیلد می گوید که تاریخ بده ها خیلی دیرین از آن است که پنداشته می شود. و محدود به چهار و قبل از میلاد نیستش کسانی که درباره باره گات ها و ودا کار کردهاند زبانشناسان که شما میتوانید نمونه‌هایی را رم در کتاب تاریخ 8000 سال شعر ایرانی از سر دکتر همایون فرخ ببینید نشان دادن که گات ها از ودا ها هم از نظر واژگان هم از نظر دستور زبان و مانند اینها. و من اینجا اشاره های دیگری بکنم از جمله، هجوهشتری به نام باهای کوکا ضمن مراجعه به تیریش. نتیجه گرفته که قدمت زمان نگارش تیریشت که بعد از زرتش بوده 5300 سال قبل از میلاد میباشد. این سنار دیگر. هجوهشتر دیگری به نام اردشیر خبردار ضمن محاسبات نجومی مربوط به منطقتال البروج و تابش آفتاب بر زمین چنین نتیجه گرفته که زمان گاتها 8500 سال پیش بوده. محقق دیگری به نام اسپنسر برابر بررسی های خودش که بر پایه ستاره شناسی می باشد زمان نظرتش را 7129 سال پیش از مسیح یاد می کنن. و... روی محاسبات نژومی نجومی بر اساس قولی از ذات سپرم محققی به نام بهرام پاتاوالا زمان زرتوش را 6,312 قبل از مسیح ذکر کرده و ما میدونیم که دست کم ده مورخ باستانی ماندند اکسانتوس، دیویجانت لرتیوس هرمادروس هرستو آدکسوس هرمی خانتوس دیدیایی پلینیوس پلوتارک، تئوپومپوس سوئیداس زمان زرتشت را 6000 سال پیش از هخامنشیان یا 5000 سال پیش از جنگ تروادان هستند. یکی از دلایلی که باعث شد این زمان کهن چندان مورد توجه قرار نگیره، باستان شناسی بود. شما میدونید که خیلی از داده ها و بررسی ها و به هر حال نظرها بر برپایه آثار باستانشناسیه. از اونجا که در ایران کاوش های باستانشناسی ناتمام ماند و متاسفانه همراه با قاردگری ها و چپاول ها و پردهپوشیها ها بود برای همین خیلی به سختی می شود به بررسی نشست. اما به هر روی با توجه به نمونه مانند جیروف و دیگر نمونه هایی در فلات ایران ما درمیابیم که تاریخ تمدن در ایران زمین بسیار کهنه و کاملا همسو هست با اون چیزی که در زندگی زرخش ما میبینیم. برای آره نمونه مری مری بویس در کتاب تاریخ کیش و میگوید از نظر فرهنگی تایفه زرتوش دستکم در سالهای کودکی و جوانی او در عصر هجر نوسنگی بوده عصر دلیلش اینه که در گادها شواهدی دیده نمیشود که حکایت از آشنایی او با جامعه تقسیم شده به سه طبقه میکند که مشخصه اصر برنز این صحبتی که مریوش میکنه میگوید جامعه ای که زرتش در آن روش می آورد و آرامتر است دو طبقه دارد آثار تقسیم جامعه به سه طبقه تازه میخواهد در آن جوانه بزند آن شو مسلم است اینه که زرتوش پیش از آغاز کوشهای بزرگ ایرانیان زندگی میکرده این سخنی بود از مری بویس و با توجه به اینکه که شهر ری رگا, رگا زادگاه زرتوش دونسته شده و اصلا به نام زره زرتوشی نامبر بوده و ما میدونیم که در اینجا مسمقان موبد موبدان سکونت داشته و به چیزی مانند همین واتیکان از این نهاد واتیکان رو به تقلید از همین مسموغان درست کردند. به این ترتیب وقتی که آثار باستانی رو در شهر ری بررسی می کنیم می بینیم که این آثار دست کم به 6 تا 7 هزاره پیش از میلاد می دوستان دوستان گرامی اینها نکاتی بود بسیار کلی فشرده و شکریه از پجوهش هایی که پراکنده بوده و به فراخور حال اونطور که در توانم بود اینها رو آوری کردم در کتاب پیامبر آریایی ارائه دادم و داستان دو زرتوش یعنی زرتوش و سپیتمان و زرتوش تا رو در کتاب دیگری به نام قبله زرتشت ارمقان شما عزیزان کردهاند که میتوانید با خواندن این کتاب کتابها دقیقتر و نزدیکتر به این مسئله بپردازید و آشنا شوید اگر دوستان عزیز پرسشی دارند میتونند تایپ کنند یا شفاهی مطرح کنند من در خدمتشون هستم تا باز هم در این باره به نقلات مدارش دیگر صحبت بکنیم. سپاس گذارم. درست باشید جناب آی اطای گرامی ما بانو تارا رو داریم که پرسشی دارن. بانو در پیش هایتون استید. بر شما و سپاس از استاد بزرگوار استاد گرامین، من میخواستم ببینم نگر شما درباره این جسدار چی هستش. آیا این ببینید زمان زندگی زارتش رو؟ زمانی که اشو زندگی و زندگی می کردن رو هرگاه به عقب میندازم عقبتر می‌گن. من خوندم که موقعات طول زندگی دنیا رو به عهدهای سه هزار ساله، بخش کردن و تقسیم کردن و بر این باور باید پس از اشوزرتشت سه هزار سال دیگر زمان داشته باشیم برای درازهای عمر دنیا و برای همین هم هستش که تا میتونن زمان زایش اشوزرتشت رو میبرن عقب که اون سه هزار سال به چیز بشه میخواستم ببینم نظر شما راجع این موضوع چی هستش؟ سپاس. با سپاس از این چیزی که بسیار مهمه شما ببینید همونطور که اشاره کردم من بر این باورم که در واقع با توجه به اینکه خیلی چندین بار اسناد ما ابسا ما نابود شد از میان رفت و خب مدام و مدام رو به کاهش رفت مدار ما خیلی کم شد. یکی از دلایلش اینه که هنگام بازنویسی شاید اشتباهاتی رخ داده. دوم این که با توجه به این که تقریبا ثابت شده که به راستی ما چند زرتوش داشتیم چند به نام زرتوش ظهور کرده. اصلا ما می‌بینیم که در زمان هخامنشان اشاره به یک زرتوش دیگری شده. برای همین به نظر میاد این گاه شمار مربوط به زرتوش خیری هم میشه و ما دقیقاً به راستی نمیدونیم چه چیزی رخ داده و این گاه شمارهای های هزار ساله دقیقاً از کی شروع شده و چگونه به فرجام رسید رام رسید فعلا میتونیم ارائه بدیم و امیدواریم در آینده نزدیک دوستان با توجه به پیشرفت فناوری به ویژه در زمینه های همین اخشناسید بتونند تعیین دقیقتری بکنند ببینید خویاجی یه پژوه هست هست فرراژه تاریخ تطبیقی استرا های ها چین کار کرده و یکی از فرضیهایی که ارائه داده اشاره کرده اینه که، همسانی و همانندی, همانندی بسیار زیادی بین حشکیدر و وقشتره شاه ماد شاهنشاه ماد وجود داره و وقشتره از شاهنشاهان بسیار بزرگی بود و به صورت که اکثر هم یاد میشه خیلی شبیه یعنی این که یعنی که به نظر میاد که نم باستا و که وقشتره و وقتی که ما بخوام این فرضیه رو دنبال بکنیم حال فرضیهی که من اضافه می اینه که به این مسئله است که در واقع پایان اون دوره دوازده هزار ساله می دوره هخامنشی باشه برآمدن کورش بزرگ باشه و تا اندازه هم این تطبیق تقریبا درست در میاد با زمان 8500 ساله زردوش 9000 ساله زردوش تا اندازه جور در میاد اما در نهایت باید بیشتر بررسی کرد این زرتش ها دقیقتر دقیق کرد از هم و محاسبات خیلی دقیقتری در زمینه اخترشناسی انجام داد سپاس گذارم اگر دوستان دیگر پرسشی دارند، در خدمتشون هستن سپاس جان شما پرسشی داشتید در پیشگاه شما خواهیم بود؟ سپاسخوزارم با آفرین گفتم به کدوان عطای فرد که خیلی زیبا سخن میگن و می آموزیم. یه دو دو پرسش داشتم یکی این که میخوام بدونم که شنیدم که در زمان زرتشت هنوز خط نبوده قبل از پیدایش خط زرتشت گات ها رو نوشته سخنی گفته که با سمبول هایی که مهره هایی که پیدا شده و من هم خودم این دارم با اونا با شاید سخن می گفته. میخوام ببینم شما اینو تایید می یا خیر و سخن پرسش دیگه در مورد ابراهیمه که در تورات به نام ابرهام که اون هام گفته ااهرام و به اون نام می میشده که پیش ملکی سیدت میره یا ملک صادق و شاگرد ملک صادق بوده در تورات که ملک صادق خودش آتش کرده داشته که حتی عیسی در خود اون باقیت سیمانی میگه من شاگرد ملکی سیدت هم نه هاروم اینه که اونم به زرتشتی بوده خود ملکی سیدت اینم میخوام ببینم که آیا شاگرد مرکی سیدر بوده ابراهیم یا خیر بسیار سفاظ خواهش میکنم در باره ابراهیم که الان پرسیدید در این زمینه ما بررسی هایی داریم گفتیم که در زمان نینوس بوده بان امرود و جالبه که بر اساس اون شد که سویداس اعلام کرده 1800 قبل از میلاده و به روایتی از مسعودی مبرخه اسلامی زمان ابراهیم 3640 سال پیشه حدودن و همینطور زمانهای مختلفی یعنی از 1200 قبل از میلاد تا حدود 2000 قبل از میلاد این زمان متغیر هستش و با توجه به اینکه ابراهیم زاده ایران بود می شود او را به هر حال به گونه‌ای وابسته به یک از مکتبهای مقانه دانست اما نمزایی یا کاملا زهرشی به هر حال تفاوت هایی داشتن شما می دونید که هر دین و کشی که میاد به یک سری شاخه ها تقسیم میشه و با هر حال شعبه‌های پیدا میکنه و اما ببخشید درباره پرسش نخست شما من یک بارگه لطفه فرمایید، این پرسش اولیتون بگید، من یک کردم پرسش اولم اینه که در زمان زرتوشت خط وجود نداشته و حتی زرتوشت روی زمین به شاگرداش درست می‌دارید داستان استورایی هم دارین در مدرسه، در بستان های که داستانی از ویشتاس و زرتوش میگه خیلی زیباست. خب در جایی دیگه توضیح میدم ولی سمبول بوده که با این سمبول یا مهرها روی زمین درس میداده و این سمبول ها همکنون وجود داره برای مثال دایره بحمن بحمن شکل دایره مربوط به بهمن فرشته بهمن و دانش شکل مثلث به اسپندارمز میباره و شکل مربع اردی بهشت همینطور شکلهای دیگه داریم که من همه رو دارم و اینا رو در کنار رو هم که میذاریم همون معنی قات ها داده میشه و میخوام ببینم آیا شما برخوردی کردین با این مهره ها. البته در سگنگارها به نوزد دیده میشه و شکم شناخته شده هست ولی خواستم نگره شما رو ببینم که آیا شما هم برخورد کردیم با این سنبول های یا علمات ها چندان و امیدوارم که در این زمینه بتونم اینها رو بررسی بکنم ببینم و اینکه درباره خط و الفا ما میدونیم که در همون زمان نگارنوشته ها بوده یعنی خیلی کهنه نگاره های به صدا هیروگلیف میگن نگارنوشته هیروگلیف خط اولیه خط بوده و به نظر میاد که با توجه به کشفیاتی هم که در جیروف شده تاریخ خط و علیفا باز هم زمانش عقبتر میده خیلی کنه از این چیزی که امروزه میدونن ایران شناسی هنوز در پرده ای از ابهامات و تحریفات وجود داره یعنی غیر از اینکه حالا یک سری مدارک هنوز کم هست یا روبوده شده نابود شده به هر ها دستایی هم در کاره که این پیشینه ما چندان روشن نشه و با یک سری تاریخ های ساختگی ما رو ببرن زیر سوال و زیر نفوزهایی که خودشون ساختن به نام بابلی و بین و و قفخوزی و غیره و غیره که این بحث دیگری میطلبه و مایلیم که زیاد از این جستار امروز یعنی زمان زرتوش دور نشیم و همچنان در همین حوزه اگر دوستان باز هم پرسشی دارن کار بکنیم خواهش میکنن سیار سفاس دوید دوباره به اصل بزرگوار شما گفتید که دو تا چند تا زرتشت بوده. ما می که روحانیون هر دینی، هر آیینی معمولا میگن یک بشارت میدن، نوید میدن به آمدن کسی که بیاد و به یک گونهی میشه گفت منجی باشه و اصلاحگر باشه و درست کننده یه اوضاع بد جهان پس از اون پیامبری که بوده حالا پس از اون هر کسی که به عنوان یک سرچشمه آینی بوده خواهد آمد و ما حتی این رو توی دین اسلام هم میبینیم منتها معمولا تو دین هایی دیگه میگن خود پیام برمیاد در دین اسلام که خب امام ها هستن که یک امام میبین آیا شما ممکن هست ما بتونیم این گونه برداشت کنیم این زرتوشت هایی که شما میگید اومدن زاییده پندار مبدان در اون زمان بوده باشن سپاس گذارن. ببینید بهترین مثالی که در این زمینه شاید بتونم بزنم باز همین کلیسای کاتولیک هست شما میدونید که رهبر کاتولیکها پاپ نامیده میشه و ما چندین پاپ داشتیم به عنوان یک لقب همطور که اشاره شد یه چیزی داریم به نام زرتوش توم درتوش تخمه، درتوش تبار یا به مفهوم جانشین زرد ما این سنت داشتین تو ایران که همون مصومقان بود معملا همونطور که گفتم حوزه اون مرزهاش گذشت در شهر ر بود ری داشت لقب گرفتی بود. این هایی که ظهور میکن حالا یا گاهید تصادفی نام ضرد شده داشتن، یا اینکه به هر حال این لقب رو، برای خودشون گذاشته بودن از جمله اینها زرتوشن حقامانشیه که من به یک مدرکی برخورد کردم کتاب آثار الباقیه نام این زرتوشن حقامانشی وارتوش بود وارتوش. و جای پای خیلی زیادی در تاریخ داره در حتی منابع مختلف از این زرتوشن حقامانشی یاد شده که خیلی سیر سفر روشه به جاهای مختلفی میره و حتی پیشگویی هایی هم انجام میده پیشگویی هایی رو میکنه چیزی که باید بگم اینه که پیامبرانی که ما امروزه به نام یهودی میشناسیم برخی از اینها به نظر میاد در رده مقان بودن پیش همین ابراهیم دیگری دانیاله دانیال اصلا یک نام است نام سیلانی، یعنی دانا، از همون کلمه دانا میاد، دانیل و در توراد، در ترجمه های قدیم پارسی تورات به عنوان رئیس مجوسیان از یاد شده یعنی همون مسموغان، موبد موبدان یادتون باشه که گویا یا برنامه هایی کردن که این ترجمه ها عوض بشه برای نمونه در برخی های جدید از تورات لقب مسیح رو حذف کردن برای کوروش و اینها رو ما باید در جریانش باشیم اونطور که شما هم گفتید میتونه باشه یعنی اینکه به هر حال برخی از این مگان موبدان اومدن و زرتشتی رو بر به هر روی با توجه به اینکه درگات ها در گات هم زارتش از سوشیاند ها نام بوده و اینکه هر کسی باید سوشیانتی باشه سودرسانی باشه شاید برخی از اینها هم از این مسئله استفاده کردند و خودشان را یکی از اون سوشیاند ها نشان دادند به سپاسگزارم اگر بارو فارا شما پرسش دیگری داشتید بله من در ادامه پرسشم میخواستم بگم استاد نگر ما از زرتشت سراینده سروده های گات که چندین بار در گاتا از خودش به نام زرتشت استنتمان نام میبره و مانتران ما ایشون هستن ام، نه زرتوشت هخامنشی نه کسان دیگری که حالا تصادفی نامشون سپاس سپاسگزار میشم اگر در این مورد میشد واضح تر بگیم یعنی در مورد من متوجه نشدم یه بار دیگه. بفرمایید زرتوش خودشو در گرفتها به همین نام زرتوشت تا پیتمان گفته تا اینجا متوجه شدم آخر پرسش شما چه بودش؟ بانو تارا بانو تارا <تصفيق> من فکر میکنم بوریده شدن ایشون مزداجان شما پرسشی رو داشتی تا مجدد تشریف بیارن بانو بله سپاسگزارم از شما جناب حتویفرد با این های بسیار بسیار گسترده و گیراتون. من یه پرسشی داشتم این بود که ما در قطع سروده‌ها رو می‌بینیم که اشوازدنش به گونه پرسشوار، یعنی ما پرسش بسیار میبینیم در گاتار و این نشون میده که این یک فردی بوده که فلسفی بوده در پی دانستن بوده، در پی شناخ بوده و به دید من نمیتوان حالا ورج پیامبر شما هم به کار بردید و بسیارانیم هم به کار میبرند، من خودم به دید من این هست که نمیتوان گفت پیامبر چون که کسی که خودش در پی یافتن بوده خودش در پی شناختم بوده این فرد همونه که میگن گوینده سخنان اندیش برانگیز یا آموزگار من خودم این رو بیشتر میپسندم که اینگونه نام برده بشن ازش حالا میخواستن بردم شما چی هست در این همونطور که خودشم اشاره کرده ما نقل قول کردیم به عنوان نخستین آموزگار در عویستا یاد شده اما ما یادمون باشه که واژگان با گاهی تحریف میشن گاهی به سبب بهر های نادرست بار منفی پیدا میکنه. مانند همین کلمه دین که شاید فرض بفرمایید در همین قرون وسطا و دیگر دوران تاریخی مردم از دین بدشون میاد و ولی خب این ربطی نداره به دین فرض کنید زرتوش چون دین یعنی دعنا، حالا در جاهای دیگری در مکاتب دیگری دین حالت خشک و جامد و ضد و هم به خودش شاد بگیره اما دلیل نمیشه که ما اصل باشه رو کنار بذاریم درباره پیامبری و به هر روی تا اونجایی که ما گاتها رو داریم بررسی میکنیم اشازرتاش با احورامزا در پیبنده است یعنی اگر ما بپذیریم که خدایی به نام احرومهزا در کار است پس به این ترتیب می میتواند پیام آور آن الهامات و اشراقات و مکاشفات خودش باشد و دیگر اینکه که شیوه یک گاتا بسیار جالب، یعنی تکگویی ها، دوگویی ها، سگویی ها یعنی میبینیم که حتی من بر این باورم که زرتشت نخستین شاعر و نخستین نمایش نام نویس هم بود یعنی در بخش از گات ها ما با گفتگوی اهورامزا و انشاسپندان هم روبرو میشویم به هر رویی اینها رمز و رازها و نماد پردازی است که باید وارد این حوزه شد و از دید همون حوزه نگاه کرد نه از دید دین های دیگر امیدوارم که اون منظورم و دوستان به هر روی کما بیش دریافته باشن که چه میخواهم بگویم و اگر اجازه بدید به هر روی این بحثی بسیار فراگیر که نتوانیم در نشازهای گره هم بپردازیم و اگر بفرمایید چقدر زمان داریم من سند بسیار مهم دیگری را برای زمان زرکش رو برای دوستان ارائه بده. تندرست باشید. بانو تارا، اگر میتونیم ما پرسش شما رو پس از گفتگوی مهم آیه عطایی بذاریم. خواهش میکنم. من چون هم شنیده نشد، نتم بریده شد برای همین چیز کردم، یکزادم که پرسشم رو بشنوم. در رابطه مورد هست اگر پروانه بدم جناب استاد من بگم که از موضوع جدا نشید امکان داره جنب... شما فرمودید که زرتشتهای های زیادی اومدن و زرتشت هخامنشی ما در گات ها چندین بار میبینیم که اشو زرتشت از خودشون به نام زرتشت اسپنتمان نام بردن آیا کندین زرتشت اسپنتمان اومده چون الان هم ما افرادی رو داریم که نامشون زرتشت و این دلیل میشه که اونها هم زرتشت هستن ممکنه خیلی هم سوشیانت باشن خیلی هم انسان های خوبی باشن ولی خیلی کنجکاف هستم که بدونم آیا زرتوشت اسپنتمان سراینده گاتا چون ایشون در نظر ما هستن گوینده سخنانه اندیشه برانگیز منتران در گاتا شما نگرتون این هستش که اون اشون زرتوشت چند تا اومده یا نه اینو دقیقا برای من باز کنید چون بسیار دوست دارم بدونم سپاس گذارم. خواهش میکنم درسته ما اون منظورمون سپیتمان یا اسپنتمان زرتوش هستش که دستکم 8500 سال پیش می زیستن و همون که اشاره کردم زرتش زمان هخامنشی طبق اوسترال باقیه ابورایحانه بیرونی وارتوش نام داشت و زرتشی که در زمان نینوس یا نمرود می زیست ابرام نام داشت ابرام که حتی برخی بر این باورند که نام ابرام با ابراهما و یا بهرام همریشه هستش و درباره زرتوش خامنشی در کتاب پیام برای آریایی و نیز درباره ابراهیم زرتوش و خود ثبیت کن زرتوش من این مطالب رو جمع بری کردم و رده بندی کردم که شما با خواندن این کتاب براتون روشنتر خواهد شد و اما کتابی که درباره زمان هشت هزار و به شما معرفی می کنم و پیشنهاد می کنم این کتاب را بخوانید و یا در یوتیوب از بانو مریست شکیده گفتارشون رو پیدا بکنید آنگاه که زرتاش سخن گفت بسیار بسیار کتاب عالی هست خیلی خوبه و بانو مریستگاس بر پایه همون تاریخ یونانی و رومی از یک سو و نیز به ویژه شون خود این بانو باستانشناس بسیار برجستهی هستش بر پایه باستانشناسی مانندس و فلزکاری و شیبه معماری در کتابشون ثابت کردن که زمان زرخش به درستی شش هزاره پیش از حقامانشیان بوده زیرا در این تاریخ ما با انقلاب کشاورزی رو برون می شویم با مهاجرت های گسترده ای از پلات ایران به دیگر نقاط جهان مانند اروپا یونان که با خودشون این فرهنگ کشاورزی رو میبرند تا اون دوردست ها و همونطور که بانوم ریست اگاز اشاره کرده رهبر این جنبش زرتوش بوده و دقیقا در زمانی میزیست که مورخان یونانی و رومی اهد بیان کردهاند و یکی از نشتههای جالبی که خانوم مریسو تگاس در کتابش آورده درباره علامت صلیب شکسته یا گردونها مهره که روی سفارینه ها نقش بسته و در دیگر آثار ایشون برای این باوره که این نشانه در واقع ابداع خود زرتاش بوده که میخواهد داستان تازش اهریمن به جهان رو بیان کنه که چگونه این جهان از حالت ایستایی به در میاد و کل این کائنا که شروع به چرخش میکنن ایشون صفالینه های زیادی رو در فلات ایران و پیرامون کل ایران بزرگ بررسی کردند نقش ها،, ها و اشاره کردن که در همون نیمه آخر هزاره هفتم این مهاجران به یونان میرن به دیگر نقاط میرن و این تمدن رو در این نقاط گسترش میدن علامت به علاوه شهارپر، شهارپره صلیب شکسته یا سواستیکا بسیار بسیار زیاد هستش و باز هم این بانو اشاره کرده که یادمون باشه افراد متفاوت در قرون متفاوت زندگی زرتش رو حدود هزاره هفتم دانستند و اینها تصادفی نیست و اینها همه دقیقه و ما باید همین تاریخ رو دنبال بکنیم یعنی وظیفه یکایی که ماست که در همین تقویم کنونی شک کنیم بخواهیم که اون عزیزانی که این تاریخ را تصویب کردهاند در این تاریخ تجدید نظر بکنند ما نیازمند کنفرانس ها همایش ها گفتگوهایی هستیم درباره این تاریخ چون کتابی که با وانه باستانشناس مریستاتگاس نوشته است بسیار دقیق هستش و انقدر اسناد و مدارش در این کتاب ارائه دادن که برای ما جای هیچ شک و شبهه‌ای نمیذارن این کتاب در ایران ترجمه شده در درست از هر هایش از آن خانم شهربانو سارمی هست که شما دوستان میتونید بررسی بکنید از جمله در صفحه 115 کتاب نوشته است، این نیز ممکن است که بیش از یک در توش وجود داشته و شاید نام زرتوش به عنوانی روحانی بدل شده است اصطلاحی عام برای پیشوایان دینی که او بنیان نهاد طبق گفته یک مفسر نام او جدایی از تمامی پیوندهای خانوادگی شاید به عنوانی برای مقامات برجسته سیاسی و مذهبی بدل شده است روش جالب دیگری رو ما در صفحه 117 که سوال شده بود درباره برای قیبستگی ها و گات ها میری ستگاز نوشته است به نقل از میری بویست برخی اناسر سروده های مذهبی گاهان نه تنها از عویس بلکه حتی از ریجودای هندی نیست که ارتباط زبانشناختی گاهان را با آن دیدیم کوهندترند این خیلی نشه جالبیه یعنی گات ها کوهندتر از ریجویده هست و میگه که زبان سرودهای مذهبی گاهانی اوستای کوهن هیچ اصطلاحی برای قشبندی اجتماعی مرتبط با پیشه های گناگون مانند کاهن، جنجی و کشماوه از نداره در حال که این اصطلاحات هم در ریگبدا دیده میشه و هم در عویستای نوین دیده میشه به این ترتیب گاتها مربوط به زمانیه زردش مربوط به زمانیه که توقعات اجتماعی میخواد شکل بگیره و میگویند زبانشناسان هنوز از این واقعیت در شگفتن که نخستین شواهد ای زبان ودایی نه از هند بلکه از شمال عراق به دست اومده یعنی هزاره دوم قبل از میلاد در ترکیه امروزی اهنامه هیتی ها و میتانیها که در آن از خدایان به ودایی سخن رفته این خودش نشون میده که ونش که که درباره مهاجرات آریایی ها گفتن به ایران نادرست آریها از ایران به دستوی این فلات مهاجرت کردند و شما دوستان اگر علاقه با باشید خودتونم بررسی کنید درمیابید که حتی تمدن مرس تمدن اس آریایی و ایرانی و مقانی و مصری ها بسیار بسیار آداب و رسومشون با میترائیس و دیگر راز و رمزهای مقانه در ارتباط و در پیونده و از فلات ایران اینها به شمال آفریقا کوش و مهاجرت ها کردند و یک باره گیادوبر میشم درباره باره علامت صلیب شکسته سواستیکا این نشته خیلی جالبه که بانو مریستگاس بر این باوره که از تشریفات دینی یسنا هم استخراج شده از دیگر اشارههایی که ایشون داره درباره استادکاران آتشه این کتاب, کتاب آنگاه که زرتشت سخن گفت نشون که در واقع اون نخستین تمدن صنعتی انقلاب کشاورزی وامدار اشها زرتاشت است. پیتمان زرتاشته و ایشان بود که شریعت وارد انقلاب بزرگی در زمینه تمدن و آبادانی میشه. بسیار بسیار اینها برای ما باید مهم باشه چون از این زاویه در حد صف به زرتاشت شده. یعنی نقش زرتاشت در تمدن ایران و جهان اونطور که در خور بوده بررسی اصلا نشده. و میبینیم که فنون پیشرفته فلزکاری، سفالگری و مانند اینها مدیون سپیتمان زرتش بوده است بسیار سپاس اگر دوستان عزیز پرسشی دارن بفرمید. دوستان پرسشی دیگه ای نیستش، جناب عطایفه من سب گذارم بابت زمانی که به ما دادید خواهش میکنم زهره بردیم از صحبتهای شما از طریقات بسیار جامعی که شما داشتید و یک بار دیگه من از دوستان خواهش میکنم اگر پرسشی دارند که ما از جناب عطایفهر پاهم باشیم با پوزش چگونه میتونیم با اجانبا اطایفت تماس داشته باشیم اگر اشکالی نداره؟ ببخشید سرتون رو نداشته خواستم بپرسم چگونه میتونیم با شما در تماس باشیم اگر کاهی داشته باشیم کتابی یا پوزشی باشه؟ خواهش میخواند در خدمتون میخوانم بود و اگر دوستان سالی ندارن پوزشی ندارن برنامه رو باید